مصنوی معنوی مولوی برنامه شانزدهم. سبب هرمان عشقی از دو جهان که خسر دنیا آخره. چون حکیمک اعتقاد کرده است که آسمان بیزه زمین چون زرده است گفت سائل چون بماند این خاکدان در میان این محیط آسمان همچون قندیل معلق در هوا نی به اسفل می رود نی بر اولا آن حکیمش گفت که از جذب سما از جهات شش بموند اندر هوا چون زمقناطیس قبه ریخته در میان ماند آهن آویخته آن دگر گفت آسمان باسفا کی کشد در خود زمین تیره را بلکه دفعش می کند از شش جهات زن بماند اندر میان آصفات پس دفع خاطر اهل کمال جان فرعونان بماند اندر زلال پس دفع این جهان و آن جهان ماندند این بیرهان بی این و آن سرکشی از بندگان زلجلال دون که دارند از وجود تو ملال. کهربا دارند چون پیدا کنند کاه هستی تو را شیدا کنند. کهربای خیش چون پنهان کنند زود تسلیم تو را تغیان کنند. آنچنان که مرتبه حیوانی است، کو اسیر و صغبه انسانی است مرتبه انسان به دست اولیا صقبه چون حیوان شناسش ایکیا. بنده خود خواند احمد دررشاد جمله عالم را بخان قل یا عباد عقل تو همچون شتربان تو شطور میکشاند هر طرف در حکم مر عقل اقلند اولیاء و عقل ها بر مثال اوشتران تا انتها، اندریشان بنگخر زیتبار یک قلاووز است جان صد هزار، چه قلاووز و چه اشتربان بیاب دیده کاندیده بیند آفتاب نکجهان در شب بمانده میخدوز منتظر موقوف خرشید است و روز اینت خورشید نهان در زره شیر نر در پوستین بره اینت دریای نهان در زیر کا، پابرین کا. هین من با اشتباه، اشتباه و گمان در درون، رحمت حق است، بحر رحنمون. هر پیامبر فرد آمد در جهان، فرد بود آن رحنمایش در نهان. عالم کبرا به قدرت سیهر کرد، کرد خود را در کهین نقشی نورد. ابلهانش فرد دیدند و ضعیف کی ضعیف است آنکه با شهر شد حریف؟ ابلهان گفتند مرد بیش نیست وای آن کو آقبت اندیش نیست حقیرو به دیدن دیده های حس صالح و ناقه صالح علیه سلام را چون خواهد که حق لشکری را حلاک کند در نظر ایشان حقیر نماید خسمان را و اندک اگرچه غالب آن خسم ناقه سالح به صورت بطشتار پی بریدندشت ز جهلان قوم مر از برای آب چون خسمش شدند نان کور و آب کور ایشان بودند ناقت الله آب خورد از جوی و میغ آب حق را داشتند از حق دریغ ناقه صالح چو جسم صالحان شد کمینی در هلاکه تالحان. تا بران امت زهکم مرگ و درد ناقت الله و سقیاها چه کرد شهنه قهر خدا زیشان بجاست خونبه های شهر درست روح همچون صالح و تن ناقه است روح اندر وصل و تن در فاقه است روح سالح قابل آفات نیست زخم بر ناقبود بر ذات نیست کس نیابد در دل ایشان ظفر. بر صدف آمد زرر نی بر گوهر روح سالح قابل آزار نیست نور یزدان سغبه کفار نیست. حق از آن پیوست با جسم نهان تاش آزارند و بینند امتحان. خبر کازار این آزار اوست. آب این خم متصل با آب جوست. زان تعلق کرد با جسم اله تا که گردد جمله عالم را پناه ناقه جسم ولی را بنده باش تا شوی با روح سالح خواجتاش گفت سالح چونکه که کرده دین حسد بعد سه روز از خدا نقمت رسد بعد سه روز دیگر از جانستان آفت آویت که دارد سه نشان رنگ روی جملتان گردد دگر رنگ رنگ مختلف اندر نظر روز اول رویتان چون زعفران در دوم رو سرخ همچون ارغوان در سوم گردد همه روها سیاه بعد از آن اندر رسد قهر اله نشان خواهید از من زین وعید کره ناقه به سوی که دوید گر توانیدش گرفتن چاره هست ورنه خود مرغ امید از دام جست می دویدند از پای اشترچو سگ چون شنیدند دین از او جمله به تگ کس نتوانستند آن کره رسید رفت در که ها شد ناپدید همچو روح پاک کو از ننگ تن می گریزد جانب رب المنن گفت دیدید آن قضا مبرم شده است صورت امید را گردن زده است کره ناقه چه باشد خاطرش؟ که بجا آره زهسان و برش. گر بجا آید دلش رستید از آن ورن نومی دید و ساعد را گزان. چون شنیدند این وعید منکدر چشم بنهادند و آن را منتظر. روز اول روی خود دیدند زرد میزدند از ناامیدی آه سرد سرخ شد روی همه روز دوم نوبت امید و توبه گشت گم شد سیاه روز سوم روی همه حکم صالح راست شد بی همه. چون همه در ناامیدی سر سرزدند همچون مرغان در دو زانو آمدند، در نوبی آورد جبریل امین شرح این زانو زدن را جاسمین، زانو آن دمزن که تعلیمت کنند، و از زانو زدن بیمت کنند، منتظر گشتند زخم قهر را، قهر آمد، نیست کردان شهر را. ساله از خلوت به سوی شهر رفت. شهر دیدن در میان دود و تفت. ناله از اجزای ایشان می شنید. نوحه پیدا، نوحه گویان ناپدید. زستخانهاشان شنید و ناله ها. عشق ریزان جانشان چون جاله ها. سالهان بشنید و گریه ساز کرد. نوحه بر نوحه گران آغاز کرد. گفت ای قوم باطل زیسته و شما من پیش حق بگریسته. حق بگفته صبر کن بر جورشان. پندشانده، بس نماند از دورشان. من بگفته پند شد بند از جفا. شیرپند از میر جوشد و صفا بس که کردید از جفا بر جای من شیر شیرپند افسارد در رگهای من حق مرا گفته تو را لطفیده هم بر سر آن زخمها مرهم نهم صاف کرده حق دلم را چون سما روفته از خاطرم جور شما در نصیحت من شده بار دگر گفته امثال و ها چون شکر شیر تازه از شکر انگیخته شیر و با سخن آمیخته در شما چون زر گشته آن سخن زان که زهرستان بودید از بیخ و بن چون شوم غمگین که غم شد سرنگون، غم شما بودید، ای قوم هرون. هیچ کس بر مرگ غم نوحه کند؟ ریش سر چون شد کسی مو برکند؟ رو به خود کرد و بگفت ای نوحهگر، نوحه ات را می نیر زندان نفر. کجم خانه راست خاننده مبین، شیف آسی قل قوم ظالمین بازن در چشم و دل او گریه یافت رحمت به علت دروی بتافت قطره می بارید و حیران گشته بود قطره به علت از دریای جود عقل او می گفت که این گریه از چیست بر چنان افسوسیان شاید گریست؟ بر چی میگری بگو بر فعلشان بر سپاه کینتوز بدنشان، بر دل تاریک پرزنگارشان، بر زبان زهر همچون مارشان، بر دم و دندان سکسارانشان، بر دهان و چشم گژدمخانه شان بر ستیز و تسخر و افسوسشان، شاکر کن، چون کرد حق محبوسشان. دستشان کج، پایشان کج، چشم کج. مهرشان کج، صلحشان کج، خشم کج. از پای تقلید و معقولات نقل پا نهاده بر سر این پیر عقل. پیر خیر نه. جمله گشته پیر خر از ریای چشم و گوش همدگر از بهشت آورد یزدان بندگان تا نمایتشان سقر پروردگان در معنی آن که مراج البحرین یلتقیانه بینه بینهما برزخون لا یبغیان اهل نار و خلد را بین هم دکان. در میان چون برزخ لا یبغیان اهل نار و اهل نور آمیخته در میان چون کوه قاف انگیخته همچون درکان خاک و زر کرد اختلاط در میان چون سد بیابان و ربات همچنان که عقد در دور و شبه مختلط چون مهمان یک شبه را نیمش شیرین چون شکر تعم شیرین رنگ روشن چون قمر نیم دیگر تلخ همچون زهر مار تام تلخ و رنگ مظلم قیروار هر دو برهم می زنند از تحت و آوج بر مثال آب دریا موج موج صورت برهم زدن از جسم تنگ اختلاط جان در صلح و جنگ موج های صلح بر می زند کینه ها از سینها بر می کند های جنگ بر شکل دیگر مهرها را می کند زیر و زبر مهر تلخان را به شیرین می کشد زان که اصل مهرها باشد رشد قهر شیرین را به تلخی میبرد. برد تلخ با شیرین کجا اندر خورد؟ تلخ و شیرین زین نظر ناید پدید از دریچه عاقبت دانند دید. چشم آخر بین تواند دید راست. چشم آخر بین غرور است و خطا است. عیبسا شیرین که چون شکر بود. لیک زهر اندر شکر مزمر بود. آن که زیرکتر با بو بشناسدش، واندگر چون بر لب و دندان زدش، پس لبش ردش کند پیش از گلو، گرچه نعره میزند شیطان کلو، واندگر را در گلو پیدا کند، واندگر را در بدن رسوا کند، واندگر را در حدس سوزش دهد. زوق آن زخم جگردوزش دهد. واندگر را بعد ایام و شهور. واندگر را بعد مرگ از قعر گور. وردهندش محلتن در قعر گور. لابودان پیدا شود، یوم نشور هر نبات و شکر را در جهان مهلت پیداست از دور زمان سالها باید که اندر آفتاب لل یابد رنگ و رخشانی و تاب باز تره در دو ماه اندر رسد باز تا ساله گل احمر رسد بهره این فرمود حق عظوجل سورتالانعام در ذکر عجل این شنیدی مو مویت گوش باد آب حیوان است خردی نوش باد آب حیوان خان مخن این را سخن روح نوبین در تن حرف کهان نکته دیگر تو بشنو ای رفیق همچو او سخت پیدا و دقیق در مقام هست هم این زهر مار از تصاریف خدایی خوشگوار در مقام زهر و در جای دوا در مقام کفر و در جای روا گرچه آنجا او گزند جان بود چون بدین جا در رسد درمان بود آب در غوره ترش باشد و لیک چوب انگوری رسد شیرین و نیک باز در خم او شود تلخ و حرام در مقام سرکگی نعمل ادام در معنی آن که آن چه ولی کند مرید را نشاید گستاخی کردن و همان فعل کردن که حلوه طبیب را زیان ندارد اما بیماران را زیان دارد و سرما و برف انگور را زیان ندارد اما غوره را زیان دارد. گروالی ولی زهری خورد نوشی شود ورخورت طالب سیه هوشی شود رب حبلی از سلیمان آمده است که مد غیر مرا این ملک دست تو مکن با غیر من این لطف وجود، این حسد را ماند اما آن نبود نکته لاین بقی میخوان بجان سر من بعدیز بخل اومدان بلکه اندر ملک دید و صد خطر مو به مو ملک جهان بود بیم سر بیم سر یا بیم سر یا بیم دین امتحانی نیست ما را مثل این پس سلیمان ہمت باید که او بگذرد زین صد هزاران رنگ و بو با چنان قوت که او را بود هم موج آن ملکش فرو می بست دم چون بر او بنشست زین اندو گرد بر همه شاهان عالم رحم کرد شد شفیع او گفت این ملک و لوا با کمال ده که دادی مرمرا. هر را بدهی و بکنی آن کرم او سلیمان است آن کس هم منم. او نباشد بعدی او باشد معی. خود معی چه بود؟ منم بی مدعی. شرح این فرض است گفتند. لیک من باز میگردم. به قصه مرد و زن مخلص ماجرای عرب و جفت او ماجرای مرد و زن را مخلص باز می جوید درون مخلص ماجرای مرد و زن افتاد نقل آن مثال نفس خود میدان و عقل این زن و مردی که نفس است و خرد نیک بایسته است بهر نیک و بد ویندو بایسته در این خاکی سرا روز و شب در جنگ و اندر ماجرا زن همی خواهد هویج خانگاه یعنی آب رو و نان و خان و جا نفس همچون زن پی چارهگری گاه خاکی گاه جویت سروری عقل خود زین فکرها آگاه نیست در دماغش جز غم الله نیست گرچه سر قصه این دانست و دام صورت قصه شنو اکنون تمام گر بیان معنوی کافی شدی خلق عالم عاطل و باطل بودی، گر محبت فکرت و معنی استی صورت روزه و نمازت نیستی حدیه های دوستان با همدگر نیست اندر دوستی الا سوار تا گواهی داده باشد هدیه ها بر محبت های مزمر در خفا زن که احسان های ظاهر شاهدند بر محبت های سر ای ارج مند. شاهدت گه راست باشد گه دروغ مست گاه ازمۀی و گاه زدوغ دوغ خورده مستی پیدا کند های هوی و سرگرانی ها کند آن مرایی در سیام و در سلاست تا گمان آید که او مست ولاست حاصل فعل بیرونی دیگر است تا نشان باشد بر مزمر است یا ربآن تمیزدی ما را بخواست تا شناسیم آن نشان کژ زراست حس را تمیز دانی چون شود آنکه حس ینظر به نور لح بود ور اثر نبود سبب هم مظهر است همچو خیش که از محبت مخبر است نبودان که نور حقش شد امام مر اثر را یا سببها را غلام یا محبت در درون شعلا زند ضفت گردد و از اثر فارغ کند حاجتش نبود پی اعلام مهر چون محبت نور خود زد بر سپر. هست تفصیلات تا گردد تمام این سخن لیکن بجو تو و سلام گچی شد معنی در این صورت پدید صورت از معنی قریب است و بعید در دلالت همچو آبند و درخت چون به ماهیت روی دورند سخت ترک ماهیات و خاصیات گو شرح کن احوال آن دو محروب برنامه های مسنوی معنوی مولوی را مینوکتاش و شهباز ایرج، تهیه و اجرا کردند